اجل کائنات از روی ظاهر آدمی است و ازل موجودات سگ و به اتفاق خیرتمندان سگ حقشناس به از آدمی ناسپاس. سگی را لغمه هرگز فراموش نگردد بر زنی صد نوبتش سنگ. وگر عمری نوازی ای را به کمتر تندی آید با تو در جنگ